سلام و درود خدمت تمام دوستان و همراهان عزیز، سراز موفقیت در زندگی که هر فردی باید بداند. آیا دوست دارید ذهنتان را جوری تنظیم کنید و بدنتان را جوری حق کنید که همیشه در حالت مثبت باشید و روی دور موفقیت بمانید؟ در این ویدیو سراز موفقیت در زندگی را می گوییم که شما هم می توانید از آنها، برای برنامه‌ریزی ریزی ذهن سان الگو بگیرید تا از همان لحظه ای که از خواب بیدار میشوید در حالتی از موفقیت و کامیابی باشید و در طول روز نیز هایتان بگونه ای باشد که شما را به سمت هایتان سوق دهد. یکی از بزرگترین تله هایی که در جامعه مدرن وجود دارد، اوتوپایلت کردن یا هدایت خودکار سوکان زندگی است. یعنی مرده متحرک بودند و انجام هر کاری که دیگران انجام می‌دهند. بیشتر ما به شدت مشغول واکنش نشان دادن و پاسخ دادن به پیرامون و چیزهایی که اطرافمان روی میدهد هستیم در حالی که باید با توجه به دنیایی که خاص خودمان است دست به عمل بزنیم و مسئول دنیای خود و واقعیت متعلق به خودمان باشیم ما فراموش میکنیم که حواسمان به خودمان باشد و اهدافمان را از یاد میبریم. هوشیار باشید اگر در تصمیم های روزمرهتان آگاه ها هوشیار باشید اعمال و رفتارهای مناسبتری خواهید داشت که به شما در رسیدن به اهدافتان کمک خواهد کرد در زندگی هدف داشته باشید بر اساس ارزش و آولیت دست به عمل بزنید و اجازه ندهید دیگران به شما بگویند چه بکنید یا چطور کاری را انجام دهید وقتی شروع می کنید به گرفتن تصمیم های این فکر به سراغتان می آید که آیا با این کار به هدفتان نزدیکتر خواهید شد یا از آن فاصله خواهید گرفت دلیل کاری که اکنون در حال انجامش هستید چیست؟ چرا این کتاب را می خانید؟ کار دیگری ندارید انجام دهید؟ یا همین ویدئویی که الان مشغول دیدنش هستید آیا یک یا چند نکته مفید برایتان دارد تا هوشمندانه آنها را در زندگیتان کار ببرید؟ و جوری شرایطتان را بهتر کنید که در مسیر دلخواهتان پیش بروید اهدافتان چیست؟ سالم باشید وزن کم کنید اندامی متناسب داشته باشید به شغل رویایتان دست پیدا کنید خانه رویاییتان را بخرید زندگی رویایتان را داشته باشید به سرمایه مشخصی دست پیدا کنید تشکیل خانواده دهید زن یا مرد رویاهایتان را ملاقات کنید اگر واقعا میخواهید به اهداف هایتان برسید و آنها را به واقعیت تبدیل کنید، سکار است که باید هوشیارانه و محسوس انجامشان دهید. 1. اهداف خود را بنویسید. یک راز موفقیت در زندگی این است که اهدافتان را بنویسید. اولین کاری که صبح انجام می‌دهید، تعیین می‌کند که روزتان چگونه قرار است باشد. ذهنتان را جوری برنامه ریزی کنید که از همان لحظه بیدار شدن در شرایطی قوی و توانا باشد با این روش قطعا یک روز عالی و مفید خواهید داشت حالا چطور می توانید چنین شرایطی را برای خودتان ایجاد کنید با نوشتن اهدافتان هر روز صبح وقتی این کار را کردید دور مهمترین هدفتان خط بکشید هدفی که در دراز مدت بیشترین تاثیر را در زندگیتان خواهد گذاشت حالا از خودتان بپرسید امروز چه کارهایی میتوانم انجام دهم که همه چیز را تغییر دهد و من را به این هدفم نزدیک تر کند تمام کارها و اقداماتی را که به ذهنتان میرسد یادداشت کنید دور دو مورد از مهمترینشان را خط بکشید و شروع کنید تا زمانی که انجامشان نداده اید متوقف نشوید این شیوهی بی نهایت موثر و عالی است که همان اول صبح شما را در شرایطی درست و مطلوب قرار می دهد به جای اینکه صبح سرگردان و خوابالود باشید و نیم ساعت طول بکشد تا بیدار و هوشیار شوید، ذهنتان را تنظیم کنید تا پربازده و موفق باشد. یک دلیل خوب دیگر برای نوشتن اهدافتان این است که با خواندنشان احساس خوبی خواهید داشت. جوری آنها را بنویسید که انگار همین الان به نتیجه رسیدند. با تکرار هر روزه این نوشتن و خواندن خوش و مثبت اندیشی شما تضمین خواهد شد. و طبق اهدافتان عمل خواهید کرد اهدافی که روی کاغذ نیایند فقط آرزو هستند و بس قدرت نیرویی که در نوشتن اهداف پنهان است شما را به سمت دومین شرط لازم برای موفقیت سوق می دهد دو باورهایتان را قوی کنید یک رمز موفقیت در زندگی این است که باورهایتان را قوی کنید اگر از افراد موفق بپرسید اولین قاعده کامیابیشان چیست؟ همهشان خواهند گفت: خودشان و کاری که انجام می دهند را باور دارند و از ابراز این باور نمی ترسند. اگر شما خودتان را قبول نداشته باشید چرا دیگری قبولتان داشته باشد. وقتی دیگران از شما درباره اهداف و می میپرسند از بیان صریح و قطعه آن نهرسید. شاید هم به اهداف بلندتان بخندند و به دیده تمسخر نگاهتان کنند اما شما با تکیه بر باوری که به خودتان دارید، نباید اهمیتی به واکنش آنها بدهید. اگر نسبت به خواسته هایتان سست و نامطمئن باشید، تصمیمات متزلزلی خواهید گرفت که شما را به جایی نمی رساند. خلاف جریان پیش بروید و متمایز باشید. گذشته از همه اینها چند نفر در دنیای امروز هستند که واقعا زندگی رویایشان را دارند. حالا چند نفر از اینها اگر ازشان بپرسید اهدافتان چیست؟ با جملاتی شبیه نمیدانم جواب میدهند. پس با اراده و مصمم باشید و خودتان را باور کنید. مردم بابت اینکه شجاعت دارید، دنبال رویاهایتان بروید، به شما احترام خواهند گذاشت. زمانی داستانی شنیدم که در مورد مرد جوانی بود که در یک فروشگاه محصولات ویدئویی کار می کرد او هر روز دو مجله با خود به محل کارش می‌برد. یکی مربوط به کارآفرینی بود و دیگری مجله‌ای بود پر از تصاویر های پر سرعت و گران قیمت. رئیسش از او پرسید که چرا او هر روز این مجله‌ها را با خود می‌آورد و جواب مرد جوان این بود: من دارم اتومبیلی را که قرار است بخرم انتخاب می‌کنم. واکنش رئیس مانند بیشتر آنهایی بود که ذهنی متوسط دارند. او دارد خودش را خسته می‌کند. او هرگز به چنین اتومبیلی نخواهد رسید و در نهایت مایوس و ناامید خواهد شد. مدتی بعد، مرد جوان کارش را در آن فروشگاه رها کرد و به دنبال رویایش رفت. چند سال بعد، او به همین فروشگاه برگشت تا یک فیلم ویدیویی را به آنجا برگرداند و سوار همان اتومبیلی بود که در آن مجله انتخابش کرده بود. همان کسانی در آنجا کار میکردند که این جوان در گذشته با آنها همکار بود. حالا می توانید تصور کنید وقتی او را با همان اتومبیلی دیدند که فکر می هرگز صاحبش نخواهد شد چه قیافه ای داشتند. همه اینها با ایجاد یک سیستم فکری و اعتقادی قدرتمند شروع شد. اولین قدم برای رسیدن به رویاها و خواسته ها این است که آنها را باور و تصور کنید. وقتی شما در ذهنتان ایمان دارید که همکنون به اهدافتان خواهید رسید، حسی از تحقق و یقین ایجاد می شود. این باور و قطعیت شما را به سمت اقدام و عمل پیش می برد و وقتی بدانید نتیجه چه خواهد بود، خیلی راحت می توانید اقدامات لازم برای رسیدن به آن نتیجه را انجام دهید. شما مطمئن هستید بدنی را که دوست دارید خواهید داشت. شما مطمئن هستید با ای که آرزویش را دارید در خانه رویایتان زندگی خواهید کرد. شما مطمئن هستید شغلی که دوست دارید را خواهید داشت و سرمایهایی که باور دارید لایقش هستید به دست خواهید آورد. اگر تصاویر موفقیتهایتان را مدام در ذهنتان تکرار و تجسم کنید، راه های عصبی جدیدی در مغزتان ایجاد می کنید. ذهنتان نمی تواند فرق بین واقعیت و چیزی را که صرفاً تصوراتی قوی و روشن هستند تشخیص دهد. رویا پردازی کنید و آن را باور داشته باشید. تصور کنید همکنون به خواستهایتان رسیدید. تصور کنید همکنون به خواستهایتان رسیدید. اگر رؤیایتان ملکه ذهنتان شود، مطمئن خواهید شد که تنها نتیجه و پیش آمده ممکن همین است و تلاش می کنید راهایی را پیدا کنید تا به وقوع بپیوندد. قدم بعدی که شما را به سمت کامیابی و شادی هدایت می کند، این است که روی خودتان سرمایه گذاری کنید. از خردمندی پرسیدند بهترین سرمایه گذاری ممکن که کسی میتواند انجام دهد چیست، جوابش کوتاه، ساده و دلنشین بود روی خودت سرمایه گذاری کن. نام این خردمند وارن بافت است که موفقترین کارآفرین و سرمایه گذار دنیاست و بناب گزارش و بناب گزارش فربز سرمایه‌ای به ارزش 53.5 و میلیارد دلار دارد. استخدام مربی شخصی، عویت در باشگاه ورزشی تهیه غذای سالم خریدن کتاب و پرداخت و هزینه های آموزشی ولخررجین نیستند بلکه سرمایه گذاریند سرمایه گذاری روی خودتان. بعضی از کارهایی که می توانید برای سرمایه گذاری روی خودتان انجام دهید به باشگاه بروید و تمرین کنید. وقتی هنگام برگشتن از محل کار برای خرید به فروشگاه می روید، از خودتان بپرسید، چه غذاهایی ذهن و بدنم را تقضیه و تقویت می کند تا احساس و عملکرد بهتری داشته باشم شروع کنید به کتاب خواندن تعداد کمی از افراد کتابهایی را که خریدند می خانند. اما تعداد بسیار کمتری چیزی را که خانده اند به خاطر می سپارند دست کم یک ساعت در روز کتاب بخوانید هر ایده را که به ذهنتان میرسد یادداشت کنید یک مهارت جدید یاد بگیرید برای دل خودتان کاری انجام دهید و آخرین قاعده و توصیه ای که برایتان داریم این است ادامه دهید و ادامه دهید